امام صادق علیه السلام میفرماید من اتا قبر الحسین علیه السلام ماشین کسی بیاد برای زیارت قبر عبا عبدالله الحسین ماشین پیاده بیاد كتب الله لهو به کل خطوتن و به کل قدمن یرفعوها و یزعوها ات قرقبتن من ولد اسماعیل برای هر قدمی که بر داره خدا برای او چی می برای هر قدمی که می و بر می داره هر پایی که رو زمین میگذاره و هر پایی که بر داره خدا ثباب یک بنده آزاد کردن یک اسیر آزاد کردن رو به اون خواهد داد و می فرماد چه اسیری رو آزاد کنیم؟ منولد اسماعیده از فرزندان حضرت اسماعیل، بوئی بوئی میفرماید از بنی هاشم رو شما آزاد بکنید نه یک آدم معمولی یک برده معمولی و اصیر معمولی رو بخوای آزاد بکنید وقتی که این فرد میرسه به کربلای معلا نسیدید انشاءالله بعد از دو روز سه روز حرام متحر اونجا خدا ندا میده بنده من از من بخوا هر چی میخوای بهت بدم. اونجا آدم دعای مستجاب پیدا میکنه این مقام مقام ساده ای نیست اما چرا در بین این همه ثوابه ها اشاره شده به آزاد شد. کردن اسیر از به آزاد کردن برده رفقا شما میتونید با این قدم هایی که بر میدارید بشریت رو آزاد کنید از اسارت. کار بزرگی دارید انجام میدی. کار بزرگی خودتو ببینی بهت عجر با عظمت و بزرگ میدن اگه خودت باور نداشته باشی کارت بزرگه و عجر بزرگ هم به تو نخواهند داد خودت باید بدونی داری کار مهمی انجام میدی محکم بگو بگو من این راه رو دارم میرم آقا و مولام رو بر میگردونم از پشت پرده غیبت بیرون خواهم آورد در ثباب زیارت شما نوشته مرید ببینید حدس بزنید نه که وقتتون رو بگذارید برای شمردن. تا کربلا چند تا قدم بر میدارید میفرماد هر قدم ثباب آزاد کردن یه بردر رو داره برده زیادی در دنیای مدرن به اسارت کشیده شدن برده های شهوت برده های سروت برده ها و مظلومینی که برده جهالتن بگو من میخوام با این قدم های خودم اینها رو آزادشون کنم شما میتونید با این سفرتون موجب آزادی عبناع بشر بشید بنده ببینید کی دارم به شما عرض میکنم خدا برکت بخونه با عبدالله حسین علیه السلام داده خود شما وجودتون از برکات خون عبا عبدالله و علیه سلام هستید میتونید عالم رو آزاد کنید احساس کنید قدمهای بزرگی دارید بر میدارید ارز من تمام از اینجا برگشتید انشالله بگو من دیگه زندگی متفاوت شده میخوام برای حضرت زندگی کنم مثل همین سه روزی که در این راه زندگی میکنی این زندگی متفاوت رو همیشه در زندگی خودت جاری قرار بده